ساقی بیا که شد قده لال فرزمه تا مات تا به چند و خرافات تا به کی بگذر زکبر و ناز که دیده است روزگار چین قبای قیصر و طرف کلاه کی خشیار شو که مرگ چمن مست گشت هان بیدار شو که خواب ادم در پیست هی خوش نازکانه می چمیه شاخ نوبهار کاشفدگی مبادت از آشوب باد دی بر مهر چرخ شیوه او اعتماد نیست ای وای بر کسی که شدی منز مکر وی فردا شراب کوسر و حور از برای ماست و امروز نیست ساغی محروی جام مید باد سباز عهد سبا یاد میدهد جاندارویی که هم ببرد در دهی صبح ای حشمت م و سلطنت گل که بسپت فراش باد هر ورقاش را به زیر پی در ده بهود حتم طی جامع یک مننی تا نامه سیاه بخیلان کنیمطی زان می ای، که داد و حسن و لطافت به ارغوان بیرون فکند لطف مزاج از رخش به خی مسند به باغ بر که به خدمت چوبندگان استاده است سر و کمر بسته است نی حافظ حدیث سهرفری به خوشت رسید تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری